به نام خدای یوانی مهربان سلام ها اگرچه از های مختلف اومدن اما وطن و خواستگاه خاصی ندارن و متعلق به همه مردم جهانن در برمی از اژارفسان افسانه‌ای رو از کشور آلمان براتون نقل می‌کنم به نام گرتل زیرک برگرفته از کتاب جهان افسانه مجموع افسانه‌های برادران گریم با ترجمه از هرموز ریاحی و نسرین تواتبایی روزی روزگاری در سرزمین آلمان دختری به نام گرتل زندگی میکرد گرتل دختر زیرک و باهوشی بود و تو خونه اربابی به کار آشپزی مشغول بود گرتل هر روز غروب وقتی که شام ارباب رو آماده میکرد کفشای قرمزش رو میپوشید کلاه پردارش رو روی سرش میذاشد و به خیابون میرفت با هر چند قدمی که برمیداشت می ایستاد و زیر لب میگفت الحق که من دختر زیبایی هستم بعد یه ساعتی تو خیابون میچرخید و به خونه برمیگشت گرتل دست پخت خوبی داشت و در تحییه انواع غذاهای خوشمزه مهارت زیادی از مادرش به عرص پرده بود اون هر وقت غذای درست میکرد حتما یادی از مادرش که سالها پیش مرده بود میکرد و زیر لب برای اون دعا میکرد گرتل اشتهای خوبی هم داشته و مرتب از هرچی که روی اجاق بود لغمه ای میخورد و با خودش میگفت یا آشپز ماهر باید بدون چی پخته خیلی خوشمزر ارباب از کار گرتل راضی بود اما همیشه به اون تذکر میدادیم می گفتم دختر جان مبازه به وزنت باش داری روز به روز چاقتر میشی گرتل بتوندیم گفت چشم عرباب چشم مبازه به وزنم هستم ولی باز دور از چشم هر هرچه خوردنی دم دستش بود میخورد و از خوردن اونها لذت میبود روزی از روزها ارباب به گرتل که در حال خورد کردن ساغه های تازه کرفس بود نزدیک شد و گفت دختر جان امشب مهمون دارم برای شام دو مرغ درسته رو کباب کن و این ساغه های تازه کرفس رو هم فراموش نکن گرتل لبخندی زد و به تندی گفت چشم عرباب چشم ارباب تأکید کنن به گرتل گفت دقیقت کن که قضا خوشمزه از آب در بیاد بعد در حالی که به طبقی بالا می رفت تا کمی استراحت کنه اضافی کرد و گفت مخلفات و سوپ کلم هم یادت نره گرتل گرتل گفت خیالتون راحت باشه شرباب، خیالتون راحت باشه بعد گرتل چند ساقی کرس رو توی دهنش گذاشت و با خودش گفت <تصفيق> سبزیجات برای سلامتی خیلی مفیده به خصوص وقتی تازه باشه و چند ساقه دیگه کرفس خورد و به سراغ مرغها رفت در یک هم زدن اونا را آماده کرد و کنار آتیش گذاشت بوگ خوش کباب مرغ با ادویه و چاشنی های مخصوص تمام آشپزخونه را پر کرد نزدیک غروب گرتل به سراغ ارباب رفت و به من گفت ارباب جان اگه همین الان مهموناتون نیان مجبور میشم مرغا رو دوباره روی آتیش بذارم بعد آب دهنش رو ارداد و گفت واقعا حیفه که این مرغا رو همین حالا که آبدار و نرم و گرمن نخوریم ارباب نگاهی به گرتل انداخت و گفت نگران نباش گرتل خودم میرم و مهمونم رو میارم ارباب از خونه خارج شد و گرتل هم مشغول چیدن میز شام شد گرتل هر غذا و خوراکی رو که تهیه میکرد مقداری از اونو میخورد و از دستپخت خودش تعریف میکرد یک ساعتی گذشت اما از ارباب خبری نشد که نشد گرتل که از این همه انتظار خسته شده بود با خودش گفت وقتی آدم مدت زیادی کنار میسته عرق میکنه تشنه میشه بعد شونه هاشو بالا انداخت و ادامه داد و گفت مم. کسی چه میدونه که ارباب و مهمونش چای میان بهتره به سیل زمین برم و جلویی تازه کنم اوه لیمونات آه چقدر این هوای گرم میچسبه گرتل با قدم کند به زیر زمین رفت و پارچه پر از لیمونات رو سر کشید و به خودش گفت آخه موه. نوش جونت گرتل عزیز نوش جونت آخه گرتل بعد به آشپسخونه برگشت مرغها رو یه بار دیگه روی آتیش گذاشت اونا رو روغن زیتون مالید و شادمان سیخ های کباب رو چرخوند او یه خوشی از مرغ های شده برند شد گرتل با خودش فکر کرد ممکنه مرغ ای عیب و ایرادی داشته باشن باید اونا رو یکم بکشم بعد با سرنگوشت مرغها رو لمس کرد و گفت وای ام. عجب مرغای لسیزی حیف و سطحیف که کسی نیست اینا رو به موقع بخوره و های چقدر است. گرتل کنار پنجره رفت و به بیرون نگاهی انداخت و ببینی که ارباب و مهمونش رسیدن یا نه و چون کسی رو ندید به سراغ مرغای بریان شده رفت و با خودش گفت مم. یکی از این بالای مرغا داره میسوزه بهتر اونو بکنم و بخورم مم. بعد با احتیاط بال یکی از مرغا رو کند و با اشتهای زیاد خورد گرتل چند دقیقه بعد باز هم به فکر خوردن بال دیگه مرغای بریان شده افتاد و با خودش گفت باید کار اون بال دیگه رو هم بسازم. وگرنه یعنی ارباب ارباب که چیزی کم کسره گرتل وقتی بال دوم رو هم خورد دوباره کنار پنجره رفت و بیرون رو نگاه کرد اما ارباب رو ندید که ندید یرتل از اومدن ارباب و مهمونش نومید شده بود بعد با خودش گفت کسی چی میدونه شاید ارباب و مهمونش اصلا به اینجا نیان و به جای دیگه ای برن بعد چرخی زد و شادمانه به خودش گفت گرتل عزیز گرتل عزیز دل خوش که بقیه های بریان شده در انتظارته وقتی مرغ درست رو خوردی یه جوره دیگه لیمونات بنوش باید باید از تمام نعمتهای خداوند استفاده کرد گرتل این رو گفت و یه بار دیگه به زیر زمین رفت و لیوان بزرگ دیگهای لیمونات نوشید و مرغ رو با لذت و اشتهای زیاد خورد وقتی از خوردن فارغ شد دوباره به, به کنار پنجره رفت ولی باز از ارباب و مهمونش خبری نبود که نبود گرتل به مرغ باقی مونده نگاه کرد و گفت این یکی هم منو بسفسه میکنه آره چه بوی مطبوعی داره گرتل عزیز گرتل عزیز منتظر چی هستی اولی رو خوردی دومی رو چرا نخوری ها گرتل بیمواطلی مرغ دوم رو هم خورد و دوباره به زیر زمین رفت و یه لیوان دیگه لیمومبوش گرتل در حال نوشیدن شربت لیمنات بود که صدای در به گوشش رسید. بله، بالاخره ارباب از راه رسید و به محض ورودش با صدای بلند گفت: "گرتل! گرتل!" گرتل با عجله خودش رو به اربابسون ارباب گفت: "عجله کن، مهمون تا چند دقیقه دیگه میرسه." گرتل به تندی گفت: چشم ارباب چشم همین حالا غذا رو میارم ارباب رفت تا میز شام رو وارسی کنه و ببینه آیا همه چیز سر جاش هست یا نه ارباب کارد بزرگی رو که میخواست مر رو با اون تیکه تیکه کنه برداشت و در حالی که از پله ها بالا میرفت مشغول تیز کردن اون شد در همین موقع صدای در به گوش رسید گرتل با ادب و نزاکت در رو به روی مهمون باز کرد و به محض دیدن مهمون انگشت روی لب گذاشت و آرون گفت فورا از اینجا برو اگه به چنگ اربا من بیفتی کارت زاره برو برو مهمون با تعجب و حراس دهن باز کرد که چیزی بگه اما گرتل اونو به سکوت دعوت کرد و آرون گفت میدونم میدونم میدونم که به شام دعوت شدی اما ارباب قصد داره دوتا گوش تو بپوره بعد بب. به ارباب که در حال تیز کردن کارت بود اشاره کرد و گفت می‌بینی می‌بینی چه جوری داره کارتش رو تیز می‌کنه می‌بینی نگاه حراسان مهمان به طرف ارباب که دورتر از اونها در حال تیز کردن کارت بود کشیده شد لحظه بعد مهمون حراسون و شتابان از اونجا به محض دور شدن مهمون از خونه ارباب گرتل جیغ کشان نزد اربابش دوید و فریاد زد ارباب ارباب ارباب با تعجب و نگرانی پرسید چه خبر شده گرتل چی شده گرتل گفت ارباب ارباب عجب مهمونی دعوت کردی ارباب با تجب گفت مگه چی شده گرتل منظورت چیه گرتل به ارباب نزدیک تر شده گفت میخواستیم چی بشه مهمون محترم شما اربابجان مرغهایی رو که میخواستم سر میز بیارم از توی ظرف قابید و فرار کرد؟ ارباب با چشمهایی که از تعجب گرد شده بود گفت چی به حق چیزهای ندیده و نشنیده گرتل بعد از گرتل پرسید از مرخ های بریان نازنین چیزی باقی نمونده گرتل گرتل با تأسف جواب داد هیچ قربان هیچ با. هیچ یک ارباب کارد به دست از جا پرید و به طرف در رفت گرتل با تعجب ارباب رو دنبال کرد ارباب از خونه خارج شد و رد مهمون رو گرفت و در حالی که بدون بال مهمون میدوید فریاد می زد فقط یکی فقط یکی فقط یکی و منظورش این بود که مهمون یکی از مورهای بریان شده رو بهش پس بده تا امشب ارباب بدون شام نمونه اما مهمون که خیال میکرد باید یکی از گوشهاش رو به باد بده مثل برق و باد می تا هر دو گوشش رو به سلامت به منزل برسونه گرتل که از دور شاهد تعقیب ارباب و فرار مهمون بود با غرور به خودش گفت آفرین آفرین آفرین, آفرین گرتل سونی آلمانی گرتل زیرک رو از کتاب جهان افسانه از مجموعه افسانه های برادران گریم برتون نقل کردم مردمنشناسان قصه ها و افسانه های رو به عنوان آفرینش هنری که در بین همه گروها و هر اجتماع به وجود میان و از نسلی به نسل دیگه منتقل میشن مورد بررسی قرار میدن بعضی از مردم شناسان بعد از بررسی ها و پژوهش‌های های عمیق به این مسائل توجه کردند که معنا و پیام این افسانه‌ها و قصه ها چیه امیدواریم همه ما با شنیدن یا خوندن هر افسانه و قصه از نکات مفید و پیام ارزشمند این گنجینه غنی عامیانه بهتر لذت ببریم و بهره‌های لازم رو بگیریم ازار افسان کار مشترک است از نویسنده و سردبیر زینت صالحپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی پدردار اکبر نیکهین جایکننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود